أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادر مخترم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نشستن در این شبه و شنیدن و گفتن در این ها و در خانه ای از خانه های خداوند متعال جمع شدن این کلش انشاءالله عجر از ثواب و است. دخیه است و ما و شما دست به بارگاه الله جل جلوه بلند کنیم و دو این پروزگارا در این دخیه ما رحم در لسه کسان داخل که مورد محبورتت قرار گرفته است موضوعی که ما امروز خدمت شما می خوام که صحبت بکنم داشام دلم نبا دیدی مجلس گیم به خاطر ازی که ما عادتا تا وقتی که چیزی برای گفتن نداشته باشم به تقسیم اوقات گپ نمی زنن که باز گپ از پیش شما طرف میرن شام موضوعی یادم اومد و اگر چیزی به خستام بودم از برادرها فایش کردم اما مگه من زیاد طالبه تین اگه مولای سید دادق دردقی دیگر گفت میدهد مواقع در قدوم دیگر خیلی ببینه که خلاصش کرد از او خاطر مهمی موضوعی گمشرب سرش صحبت میکنم موضوع درد و درد است برادر عزیز حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تشریف ها و جوانای ما را با درک ساخت با دست درک با درد ساخت و او صورت توانست که نظام اسلامی را تشکیل بتن و او صورت توانست که خلافت اسلامی چندین قرن دوام بکند و توانست که تاریخ بشریت تغییر بده. امروز در مقابل برنامه های رسول خدا برنامه های استعماری جای گرفتن اگرچه عرب ها استعمار را استعمار نمیگن اونا استعمار استحمار میگن استحمار میگن و استحمار کولاگی حمار میشناسن و استثمار چرا استحمار میگن اگر انسان کمک فکر کنه میفهمه که استعمار چرا استعمار میگن و چرا هم استحمار حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد که جوان شخصیت خود درک بکنن جوانای با شخصیت بسازن مسلمان ها شخصیت داشته باشن وقتی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شخصیت ها را تربیت کرد این شخصیت ها تعلق بس سن و سال نداشتن البته نبود که یک کسی 70 ساله می بود یک صحابی 70 ساله او فرق میکرد با یک صحابی 20 ساله در پیغمبر صلی وقتی که اولین سفیر اسلام تعیین کرد حضرت مسحاب ابن عمیر بود حضرت مسحاب ابن عمیر جوان کم و سال بود ولی وقتی که شد برای نخستین سفارت اسلامی شخصیت ازو او کمتر از شخصیت صحابهی که افتاد و اشتاد سال داشتن نبود حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمود جوانا را ساخته اونا اگرچی سنشان کم بود لیکن شخصیت عالی داشتن و ایده شما میپامین کلتان ضرورت و تکرار نیست حسامه ابن زید سپه سالار اسلام که با طرف روم او را پیغمبر صلی الله علیه و سلم من منحیث قماندان عمومی تاییم کرد یک جوان عجر سالت بود و با میخواستم شما ما شما جوانای بسیار زیادی مشاهده میکنیم و در تاریخ خاندیم استعمار در بقابل شخصیت سازی میخواه که این جوانا را شخصیتشان از بین ببره فقط دو کلمه هست کلمه اول که رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم سیزده سال مبارزه کرد خاطر ازی که جوانا را با شخصیت بسازند تا ای جوان بتانه که لوای اسلام و دست بگیره بیرق اسلام در دست بگیره و از پیغمبر خدا و قرآن و دین خدا دفاع بکنه و تسلیم به هیچ کس ناشد ولی استعمار میگه که از ای جوان از ای جوان رقاسه بسازه استعمار ای, اس ای جوان بیتربیه بسازه ای جوان بد اخلاق بسازه خلاصه تو ماجا عویه الانبیا پیغم برسن بگه خلاصه آن چیزی که پیغمبر را آوردن چیست؟ ای ظالم تستخفست نماشیتن وقتی که حیا نداشتی هر چیز دلست شد بکن بناهان اینا میخند که یک جوان بی حیات تری بیا خب ما میگیم که مثلا ای خنده سالار است ای رقاصه ها ستاری افغان است ای لچک ها ای نام ستاره افغان معرفی میشه اگر ما میتونه اگر اقیقتن کس علاقمند عظیم بود که بیرقی افغانستان بلند باشد و جوان افغانستان تربیه شده باید از بین محسلین کسی که اول نبری عمومی بود او رو باید ستاره افغان معرفی میکردیم تا در جهان سرزو افتخار میکردیم کسی رو ستاره افغان معرفی میکردیم که ادیعقل در کامپیوتر دست بالا داشت محصولی که در اقتصاد خوب میفامن محصولی که در جورنالیزم خوب میفامن محصولی که در طب بسیار خوب میفامن محصولی که خوب حقوق است در سیاست خوب میفامن این محصولین اگر ستاره افغان معرفی میشدن باز او وقت ما افغانها در جهان سن از او ابتخار میکردیم اما امروز وقتی که ای اینا و نام تاری افغان معرفی میشن در حقیقت به خاطر ازی که برای جهان نشان بده که مردم افغانستان چقدر بیعقل عقل و بی‌همت هستن چقدر بی‌حسیات هستن چقدر کم ارزش هستن پیامبر صلی الله علیه و آله و اومد تا که مفاهیم قرآنی را در قلوب مسلمان ها جای جو بده جوانای را تربیت کرد که قرآن متحرکن جوان هایی بودن که من حیث قرآن متحرک در زمین حرکت میکردن و وقتی که مردم میامده غیر مسلمان این جوان ها برش میگفتن که کونو مثل نه دیگه کار نکن مثل ما شو ولی امروز استعمار چی میکنه؟ استعمار میخواد که به ارزش های قرآنی عمل بکنه قرآن باید از قلب جوانان دور بسازد. یک وقت صدرازم بریتانیا قرآن شریف هده خود گرفت و گفت که ما تا وقت سر مسلمان ها پیروز نمیشیم تا قرآن از بین مسلمان ها دور نسازیم یکی از ازکرایش کهیست قرآن را پارا پارا کرد برشتو احمق ما این قسم نمیقایم قرآن را کنین برای مسابقه های لبزی قرآن پیسه خودتان جایزه به تلتی های لفظی قرآن شوه قاری قرآن از قرآن بخوانه لیکن کلش جایتانیک باشه این خودتان بکنه اما قرآن وقتی برداشته می شکه قرآن مانای قرآن نکنه قرآن ختم بکنه در شخصیت ازو ایت تاثیر نکنه و این برنامه استعمار است از این خاطر روزی که مسلمان ها تنها به لفظ قرآن دل بستند و قرآن شست افتاد پوش کردن و معنای قرآن در درس ترجمه و تفسیر قرآن اشتراک نکردند. در مجلسی که واقعیت ها گفته شد باز فورا آیستا آیستا کپک کپک از مجلس گریختند. اونو وقت است که این ملت شکست کرد اونو امروز شد که جوان تسلیم استعمار شد جوانانی که قران را تسلیم استعمار میشن یکی از استعمارگراها یک کسی گفت گف دادم گفتم خودم سیاست غرض نداریم تنها برای جوان ها که قرآن درس بدیم او برای من گفت پشم احمق هستی تو می ما را فذی بدین ما از سیاست غرض نداریم تو چی درس خواه گفت قرآن خو گفت قرآن میگه که ولن تر و کل یهود و ولا النصارى حتى تتبع ملتهم است تو تا وقت یهود و نصارا رازی نمیشه تا که ملتش دینشه عقیدهشه تا اون وقتی که تو متقد به عقیده یهود و نصاره نشی هیچ وقتی از تو رازی نمیشن هیچ وقتی طرفدار تو نمیباشن از این خاطر گفت خدا ما را بازی نتی ما میفاهم که تو در ظاهر میدی که من در سیاست کار ندارم و وقتی که درس قرآن دادی خود با خود ای جوان به سیاست رو میرن پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد تا برای مسئولیت ها را که تو در مقابل ایمان چی مسئولیت داری؟ در مقابل مردم چی مسئولیت داری؟ در مقابل اخلاق چی مسئولیت داری؟ در مقابل جهان چی مسئولیت داری؟ تو جوان جوان بر خود نیستی؟ تو باید مثل رسول گرامی اسلام رحمتا للعالمین باشی خدای تو رب العالمین است نگفته که رب کدام منطقه خاص گفته رب العالمین و ما ارسلناک پیغمبره گفته که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پس ای جوانه که مخالف از این عمل میکنن استعمار چی میگن؟ استعمار میگن نخیر جوان تو از عالمیت و جهانی بودن دوری بکن قانون ما قانون جهانی است. اما تو جوان جوان نشنالیست باش تو جوان جوان قوم پرست باش تو جوان جوان زبان پرست باش تو به خاطر ازی که برای قومت خدمت کنی که تو استعمار کمر استعمار را بست که و ضد مسلمان ها حرکت کو. امروز ما جوان داریم متاسفانه حتی آدمی پوانتون خود خوب خود دیندار میگیره خوب خود متدین میگیره در صفحه اول در مزید استاد میشه و قرآن ختم میکنه ولی بدعا به حال این جوانه که قرآن در وجود از او تاثیر نکرده خانده قرآنه لکن قرآن سرش لعنت میگه بخاطر خاطر که وقتی که مظاهرات به خاطر و دانشگاه شوه اولم جوان میخیده کمر استعمار رو بسته می کنه ورنامه استعمارگرا رو ای می کنه خوش می روس و امریکا را کرد اینه ببینین که در پوانتون جوانایی هستند که مطابق برنامه ما حرکت میکنند. این جوانایی هستند که نعره سیکولرستی میتن این جوانایی هستند که خاطر نشنالیستی یکی دیگه خودا برباد میکنن و دشنام میتند و در مقابل از اونجا سیل میکنن که تیارای امریکایی او روزی که چندن به بمباد کرد تفلای کوچک کوچک به شهادت رساند طفلا هنوز تولد نشده بودن شهید شدن زنا را شهید ساخت طفلایشان و در و اینجا جوانای ما چی میکردن جوانای ما در سرکتا برامده دادن و خاطر دانشگاه و پواندون شهار میدادن نوجوان را چوبینم به یدفت وقتی که من یک نوجوان میبینم که این نوجوان ما اتونست این جوان ما که تحصیل کرده است، این جوان ما که حافظ قرآن است، این جوان ما که در درس قرآن شراک میکنن این جوان ما که کمر ای امت باید بسته بکنه این جوان ما که کل ملت اسلام به این منتظر است این وقت که به خیزده این کارای استعمار گرانم از پس ما از کی گره بکنیم مردم افغانستان از او بیشاره و مسکین و جوالی و بیشاره ای که تابال در خانه های دلی زندگی میکنن او چی خود کرد از به شما امید ما چی خواد شد آیه قرآن نمیگه که این خدا رسول چی خواد گفت میگه قرآن که این مردم از ما هجرت کردن من خواندن لیکن عمل نکردن ای امت امت منه میگه می من آمدم گفتم که من تا اصلا بفال کسی که تعصب کرد امت منیست کسی که به خاطر تعصب قوم پرستی کشته شد از امت است کسی که به خاطر تعصب قوم پرستی دعوت کرد از امت است کسی که ای دعوت های جاهلیت اگر از امت منیست جوانا خودفریم در ماه مبارک رمضان ما به خاطر بیانه نمیم خدا و عالمه خیر نتا که بایانیا به تا و عالمه که بخاطر نشان دادن خود خیر نبینه به این مغزه های خود روشن کنیم خدا هیزم برای استعمار نگردانیم شغله های استعمار ازدو وطن خود روشن تر نسازیم اصلاحات ملیگران آیه یک جوان مسلمان ملیگران می باشند و جوان که الحمدلله رب العالمین دافا میده واشن که خدایش پروردگار عالمیان است و فقط بخاطر به خاطر حدود وطن خود کار میکنن آیا رسول گرامی اسلام به خاطر فقط مکه و مدینه کار میکرد بسیاری کسای بدبختی را مدیدیم میک که ده فالوی و انصار و تمیم انصار میشینند و گفتم تو اینجا چه گفت ما دنیا کردیم پیروی از کی میکنی گفتم تو پیش قبر کسی شستی که عقیده داشت که این دین دین جهانیه دین ترک کردن نیست اگر این مثل تو واره گیری و ترک دنیا میکرد خو در و مکرمه و مدینه منوره در بایت الله نماز خواندن بسیار ثوابش بیشتر بود از اینکه که در افغانستان بخونن لکن او ضد تو بود تو در پیش قبر کسی هستی که با عقیده تو کاملا عقیدهش اختلاف داره برادران هر چیزی که استعمار گفت مثل توتیگکا واره بله بله و سایب سایب نگویم ما باید حقیقت خود ما درک بکنیم باید شخصیت عالی خود ما داشته باشیم اصطلاحات خاص خود داشته باشیم این استلاحات که فرانی تروریست است در یک کانپراست اشتراک کردیم گفتم که ما میخواییم تروریست هم کنیم گفتیم تروریست یعنی کی هستند؟ توروریس یعنی کی؟ شما آخو میگن که کسی که ریش داشت لنگی داشت مولوی بود اینی توریست هست ما آخو میگیم که توروریس کسی است که ریش خودت چپتراش کرده است که قتل میکنه تو توروریس هستی ایران ما ما تو توروریس هستم برای دارا اصلاحات اصطلاحات بون بشاری کسان جوانها رو ما میدیم خوب به چه اسلامی میتن باز امکال کلماتی که رادیو بی‌بی‌سی و گفته امور تکرار میکنن شعر تو جوانان که از خود اصطلاح نداشته باشه از مفهوم اصطلاحات نکرده. هر کس که آمد برش بررسی که بُنیادگران، بُنیادگران چی می‌نن؟ در غرب بُنیادگران کسی رو میگم که اونا از کتابهای دینی خود پیروی میکنن ما می‌خوییم برگردیم و ما هم مسلمان هستیم، لکن بُنیادگران است. ا yeah? تو که ریاضی رو بخوانی بنیاد ریاضی را یک 2 یاد نداشته باشی وقتی که یک 2 2 یاد نداشته باشی تو ریاضی را پروفیسور هم که باشه مجبور است وایده یاد داشته باشه بنیاد ریاضی رو باید بکنی بنیاد اسلام قرآن عظیم شان است او تو میگه که تو فاندمنتالیستی تو بنیاد گره هستی تو اکستریمیست هستی تو باید برش بگه که نه در اسلام ایگفا نیست ایگفا در بین شما هست من یک مسلمان بنیادگرای متمدن پیشرفته مثل محمد رسول الله هستم مثل عزت علی کرم الله و جو هستم مثل عزت عمر رضی اللہ تعالی عنو هستم برادر عزیز مسلمانی که بفهمه که خدایش رفع العالمین است اگر به نظام کار میکنن برای نظام جهانی کار میکنن عزت ابو بکر صدیق خلافت اسلامی را بر مکه و مدینه منوره تاسیس نکرده چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلام او جا وفات اونجا کرد اونج قوت های تعیین کرد که باید به با طرف روند ما چرا اسیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله استفاده نمیکنیم ای کسانی که به خاطر یک قریه و یک منطقه و یک مملکت حث میسازن و کار میکنن یا اصغرگز قران را نفهمیدند قران میگه اگر تو مسلمان هستی در مصطفی اول قرآن وقتی خاندی که الحمدلله رب العالمین تو باید بر کل جهان کار بکنی تو باید در اندیشه ایدی بگذاری که اینم جوز بخی این همی تو نیبلیر بدبخت این همی بارک اوبامای بدبخت اینا ما باید نجات بتیم اینا در راه بدبختی در حرکت هستند ایت اینا را تهدید میکنن و بلاخره میمورند و از بین میرند از داخل انفجار میکنن. اینمی که پینینشال کرایسس بحران مالی امروز در خرب است این بحران مالی و بحران اقتصادی مثل که بحران اقتصادی اتحاد شوردگیر شکست داد امریکا هم برادران در افغانستان شکست می خودن. آغاز بنیاد آغاز شکست امریکا این اینمی بحران مالی هست که انشاءالله تعالی اروپا و امریکا شکست خاطر کرد ایناله عزیز ای مسلمان دین مقدس اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اومد تا برای جوانا وجدان زنده داشته باشد وقتی که وجدان زنده داشتی اینجاست که اینی انسان نفس ازی از امارا به سو به نفس لوامم و بدل و بالاخره با نفس مطمئن و میشه. این انسان با وجدان میتونه که مثل که پیشتر اون مولوی سر گفت یک صحابی یک اشتباه میکد فورا میمد پیشت پیغمبر خدا وجدان شعور زنده ساخته بود و می گفت که من نمیتانم که جرم پد بود بکنم باید حکم خدا سر من تطبیق شود اما امروز امروز استعمار چی می استعمار می که ما را بی وجدان بسازه هر کسی هر چیزی که گفت سر خدا خم می‌گیریم، تیر خدا بیاریم در بسیاری مسائل به خاطر که کسی ما را ملامت نکنن حتی در وادی یک شعار دادن هم زبان خدا پوت میگیریم یگان وقتی ما یگان شعارای زدید آمریکایی میتیم باز ماخ معاصرنا فکر ما نه باشه باز در فیلم برداری میبینیم که یگان تا مرد واره، تلگه‌ خدا پوت پوت گرفته که ما در فیلم کس نبینه. نر واره صدا مرگ بر آمریکا. مرگ به طرفدارهای امریکا مرد به اصاکر امریکایی ما مسلمانان افغانستان Ug murder آمریکایی در افغانستان نیست نیست ما طرفدار قوتهای خارجی نیست ما کسایی که در کندهار در ایران، در کندوز، در شیندن در هر منطقی افغانستان وقتی که مسلمان ها رو بنبارد ما میگه اینجاییی یا تروریست هستن یا تروریست هستن مرگ به ای تروریستا مرگ به تروریستای گربی با. مرگ به تروریستای امریکایی مرگ به تروریستای اسرائیلی با. زنده باد اسلام با. زنده باد اسلام با. ما عذکرهای سرسپردی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است مستقیم دادگام تقدم می کند به این شکل اینسان می تانند انسان میتونن برادر این شعارا رو شما چیز نگیریم باور بکنید وقتی که آمریکایی دیدیم که همون سی دیو رو داشت پیشش رسیده دا دیدن مروح گشته به این میشواره کمرش مشکنه بشکنارد کمرش بشکنارد کمرش بشکن برش بگو که تو آمریکایی کمدی که اینجا مسیحیت نشد بگویند ما میگیم که ذات رحمان کیست الله ذات رحیم کیست الله خدای ما کیست ما کیست غفور کیست جبر کیس؟ آذان بردی امریکا کیس؟ شکسته هندی جوش بود کیس؟ شکسته هندی غرب و شرق ملهک کیس؟ لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صل الله عليه وسلم برادر عزیز انسانی که انسانی که قرآن شناس است جوانه که قرآن شناس هست این تاریخ خودم شناس میفهمم که مسلمان ها چی تاریخ داشتن میخوان تاریخ خودم میفهمم که مسلمان ها خلافت اسلامی داشتن خلافت اسلامی را عضرت عبو بکر سده در رسول خدا تحسیز کرد امروز ما بغیرت های داریم که وقتی که از خلافت گپ بزنیم می ترس هست نگه نزن گب گپ خلیچی گب گپ خلیچی وقتی که مسلمان ها داشتن گوستاولوبون فرانسوی یک محقق و یک تاریخدان است او زده تاریخ, تاریخ تمدن اسلام عرب دوشن میکنه که یازده سال مسلمان ها یازده خلافت اسلامی داشتن در شرق و غرب می‌کردند. میکردن غرب برشان جزیه میداد شرق شکست دادن شرق شکست دادن حکومت ایرانش شکست داد یک روز یک ایرانی درک مجلس شده کرده بودیم گفت فلان حضرت عمر چی ما گفتم حضرت عمر قوت او اعدم است که اعلی تو جمهوری اسلامی را از خیرات سر از او جمهوری اسلامی داری امروز که افغانستان ما, ما مسلمان است از خیرات عمر و عثمان است اگر نیم، ما شما بالا بارکلار ما بود بوت بوت بامیان بود که 15 سال است که تو فاتحه خلاص نمیشه. ما تو خو نواسه ازو هستیم ما تو خو باید بفهمی که اونمو عمر بود اونم عثمان بود اینو جابر انصار و تمیم انصاری وشاهد شمشیره بود که ما مسلمان شدیم از خیرات کاکاز کمرد تا این ای زور ازوس که برو تو جمهوری اسلامی داری تو مجبور هستی به عظمت ازو اعتراف بکنی خیر است که از گود بابا کلان تا شکاز در برادران عزیز وقتی که درک حقیقی داشتیم، کس که درک حقیقی داشت و با اخلاص داشت اینجا چه درد پیدا میشه درد پیدا میشن وقتی که درد پیدا شد این درد درد هر مسلمان درد فکر میکنه اگر در آخری دنیا یک دفلت مسلمان سر شکل آسیب این ای مسلمان قلبش در این دکت کمیشه معتسم بلا معتسم بلا یکی از خلافا بود برش گفتن که یک زن یک زن رومی ها گرفتن و داخل زندان ایزن صدا میکنه که واه موتسما واه موتسما ای موتسما این ایقلا مرا جمع کرد امو مشاوری رو که سایه که داشت یا رجم کرد که دباری از که ما کاتدوم چطور کنیم یا انوز مشوره میکردند درد موتسما برخی است و گفت که تا که این مجلس خلاص میشه عسکرهای قره حرکت داد که بریم به سر روم و ایزن خلاص که تو چندین منطقه دیگه رومه هم پتر. وقتی که انسان درک حقیقی داشت برایش درد پیدا میشن اما انسانی که استعمار زده شد بازی به درد است اونجا مرده ها را میبینن اونجا زخمی ها را میبینن ریموند دادستش است اونجا خانده نگوش میگیرن شرمیز برای از اون معصنی که فارغ میشه از این پانتون پا که فارغ میشه بسیار شرماور است خجالت بکشن بخدا الله خواه از اون کسا هایی کس بکنم. ما به چیزی که گفتم کسی که خوب بود، خوش بود خوش بود کس که خوش نبود هنوز یک دانه دیگه سیار شما لول بهت کردین مجلس رفتیم ولی باید حق بگوییم وقتی که اونجا ما مسلمان ها شهید میشن وقتی که اونجا مسلمانها خون میخورن وقتی که اونجا مسلمان ها در زیر بمباردمان امریکایی ها و دشمن های اسلام تک تک میشن ای یک محسن فراغت خدا حق داره که بخیزه با ساز و با دل بگیره آور نیست برای مسلمان برای این محسن نیست قرب خدا شر نیست بلان بگیش شرم نیست؟ شرم ارمسک یک معسل ای بخیزه وجاش جشر فراغتی خودا باز بخیزه دین دین دین دین گلنار بیگم ورا براسه حاضرذره دو معسل واسه شما خواهش میکنه استاد به و خدا مدلم تو مجلس ها که اگر ما رو بخوایم خدای تو را فارغ نمیکند از این شادنامه خیب نبینی خداییش عمر خوب برات نته تو رقاصت تو کی فارغ شدی تو یک مهندسر مسلمان فارغ شد خوشا به حال معسلین انجیری غیرت معسلین انجیری رو ببینید صفر پنج انجیری و خدا ما به غیرت معسلین انجیری ایران ماندم به خدا خودشان در داخل پوانزه انجینری بوجه یک بایبل یک آمریکایی اردن یک جای پد کرده بود یک دفعه یک لشکری از محصول خستان دل امریکایین سیا کردن بایبل را بردند دزیک بود که تک تک وکرم تیله کی منده بالاخره گفتن والا هم تو برشم نوامبر کتابخانه گفت چه سبا شد چه تو شد همین ما محصولین قهرمان سن پنج انجینری از ما دعوت کرد گفت به این که ما در پوانزه انجینری مسجد تاسیس کردیم. بگوین بگوین زنده با همت که در پوانتهای خود مسجد و تالسیت میکنند. مرگ با مسائلی که میرخدار. مسلمانی که، ای مسلمانی که در داش، در هر کشورمان میل هر و ایوبی چند تا کسی دیگه باید اسمی که خنده بکنی. چرا گفت خاندانم میکنی؟ گبرادر گفت عزیز گفتم اینا این میگه که سال که تاسو کرده حداقل خنده بکنی گفت چه تو ما پیش خداون چه جواب بدم که ما خنده بکنم و قص در دست نصیب یا درد داشت درد داشت درد دار. اما امروز اما جوانایی که اینا درد ندارن استیمار چی میگه استیمار میگه که چی میکنی لزاب بر ها مگه چی میکنی خوب است؟ عشق میتونی راه شهوت برش باز است مال، ماشک های دلاری، در مدسات میگیرن حتی خوراک خودم کتش میبرن آه ورسق ازار میساز از بشوری خوشحال است میگه خوشحال افتخار می کنم تو دختر دارم که دگه بچه‌ها رفتن دوجا میخواستند موسسه داخل شوند خودش افتخار میکنن کنه میگه من خوب دختر دارم که ای بچه ها که بودن کلشون چیز خونده بودن ماستری داشتن در انگلیسی در کامپیوتر ماستری داشتن لسانز داشتن از پامتون لسان داشتن دخترم ایچ انگلیسی رو یاد نداشت کامیاب شد خو خو گف حالش یک خوب است که آموز کجا کجا کسایی که پر پایسل است شاکاری ندارن دختر ما شاکاریم داره اینه گر غیرت افغانی افغانیه چون با ماست همادی میدانیم هم. انتخابی که ما مطلوبش نیست ما نه تا وقتی که می‌بینیم بسیاری شخص فایمی مصروف ساخته که وقت درد نداش چوکیه از مقام از بیجوی که این وسایل استعمار است دیگر استعمار که خر میسازن توسط واسط چوکی خر میسازن توسط پیسہ خر میسازن توسط شهوت خر میسازن در غیر از اون نمیدونه که انسان خر بسازه بنظرا باید درد پیدا بکنیم فروخته نشه نفروشیم رو میخورند برادر عزیز وقتی که اینا فهمیدن بالاخره این مسلمان به خاطر اینا متو نظام جهانی اسلامی فکر میکنن بر نجات تمام بشریت فکر میکنن ما حتی با کافرات دل ما میسوزن حتی یک کافر دل ما میسوزه که باید در پیش ازو امروز که 45 میلیون مبتلا به اچ ای وی هستن و هستن باید برایی عدالت سوزی شون یا نجات داده شود. اگر 50 سال بعد امریکا خود بخود خود کلش به اسم و تلا مشه می کلش جمع میشه میگن خلاص استن برادران عزیز از چی میشه نتیجه درک و در چیست نتیجهش؟ نتیجه فکر کن ای جوان مبارز نیست. 24 ساعت مبارزه میکنن زحمت, می زحمت می میباشد؟ زحمت میکشه. ای جوان میفهمه جوان برای اون قلب امت است. قلب امت است. دیگه اعضا شب دس خاو میکنه. چه چه خاو میکنه؟ لاق قلب خاو نمیکنن تو جوان که خاو کردی وطن تابش. تو قلب از امت است. خود بیدار بساز تو باید 24 ساعت زحمت بکشی. ای جوان، ای جوان از فساد راه میبره. و بذرت. فساد مبارزه میکنند از نداشتن نظام اسلامی رنگ میبرند و به خاطر دوباره اعاده نظام اسلامی حرکت میکنند نظام اسلامی جهانی این جوان به خاطر اتحاد مسلمانان وحدت مسلمانان برادری مسلمانان زحمت میکشند اما جوانای به عقل کسایی که تحت تاثیر استعمار هستند یا به عوضی ازی که خدمت بکنن یا تمام روز در چیزهای خودم مشغول بشن تا که مسلمان‌ها تک تک کشا مسلمان ها وقتی که تک تک کشاد وقتی که مسلمان و پشتو و به فارسی و به ازبکی و به آذربایجانی شد استعمار این استفاده میکنن استعمار وطن شما میگیره استعماری در تک تک میسازن استعماری رازی میبرن برادرای عزیز بالاخره ای جوانه که درد و درد داشت نتیجهش کی من زندگی میکنن شجاع زندگی میکنن از هیچ کس نمیترسه حق میگه و به خاطر حق کار میکنه و به خاطر اعلی کلمات الله کار میکنه در آخر دعا میکنیم که خداوند این مجلسی که ما گرفتیم خدای این مجلس فقط به خاطر ریا نگردانی فقط به خاطر رضای خود قبول و مقبول و بگردانی اله هر آنچی ما گفتیم ای از درد دل ما بوده است پروردگارا در این های که دهی مخبرت است خدایا تو بر ما مخبرت نصیب کنی اله ماده خانید جمع شدیم صرف به خاطر رضایت تو اله تو در این ماه مبارک رمضان نام کسایی که در این مجلس اشراق کردند نام های همه ما را پروردگار و لطف و کرم و به خاطر که ذات رحمان و سیورحیم در لیست کسایی بگی که اونا هم در مخبرت تو داخل شده اند اللهم ربنا رب اعتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و اجنا عذابنا هر کسی که به خاطر الهای ربوط الله کار میکنه میخواد که پرچم اسلام در افغانستان بالا باشه پرچم لا اله الا الله بالا باشه الهی در هر جای که است پروردگارتو نصرت و ندوسات بکنیم. بکنی الهی هر کسی که به ضد اسلام است به ضد قران است به ضد مقدسات ماست و هر کسی که به هر نامی میخواد که به ضد اسلام کار بکنه خدایا در هر جایی که باشه تو تباهش کنی و बर्बादش کنی خدای شرمنده اش کنی الهی اوت و رسواش کنی مثل دکتر نجی بود آره که پاتولش عقب غلط نیمه جانش معلوم میشد یار ما متو بغردانی پروردگاران هر کسی که به ضد اسلام میگره افغانستان ان شاء الله افغانستان خاک مستینا و بیچاره ها و غریبا و فقراست ما بسیار مردم متقیر و, و بیچاره هست. هیچ چیز نداریم الهی برای ما ایمان قوی نصیب بگو این نمیخسم که پدران و اجداد ما انگلیس‌ها شکست دادن روس‌ها شکست دادن اونا رو از بین بردن خدایا برای ما هم توفیق بده که ما را امریکا را بسکنانید الهی بر ما توفیق بده که ما ملت امریکا رو از شر عزیز ظالمان نجات بدین الهی بر ما توفیق بده که ما در اروپا و امریکا پرچم لا اله الا الله محمد و رسول الله را بالا بکنیم پروردگار آخرین کلمه‌ای که از زبان ما خارج میشه تو بر ما توفیق بده که کلمه لا اله لا اله الله محمد رسول الله